قصه زهر جمعه قصه محمد رضا سرشار آویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شیرین گفتار و کاشفان اسرار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی چنین حکایت و روایت کردند که در قدیم الایام و در روزگاران پیش در شهری و ولایتی ساربانی زندگی می کرد. همونطور که خود شما خوب می دونید، کار ساربان نگهداری شتر و اولاغ و اسب کاروان و بردن بارهای مردم از پیر و جوان به ولایات و آبادیهای دور و نزدیک بود الغرز ساربان قصه ما هم کارش همین بود یعنی بردن اجناس مردم به اینجا و به اونجا این بنده خدا سالها بود که ساربانی میکرد و از اونجایی که آدم قانعی بود نون بخور و نمیری به دست می آورد و خدا رو شکر میکرد و بالاخره به هر جون کندنی بود با زبون خوش و ناخوش و الاخهای زیر دستشو به کار و میداشت و چرخ زندگیشونو میچرخوند. باری روزی از روزها و در یکی از سفرها ساربان احساس کرد شطوری از شطرها و الاخی از الاخهای کاروانش اونطور که باید و شاید کاری ازشون بر و همیشه خدا از بقیه عقب میمونه کار که به اینجا رسید ساربان از در دوستی و مهربونی با الاق و شطر در اومد جیره غذایشون رو زیاد کرد کمی از بارشون رو کرد و رو اولاغا و شطرهای دیگه گذاشت گاه و بیگاه و وقت و بی وقت دست به سر و گوششون کشید ولی دید نخیر اونها نه تنها سر حال نیومدن بلکه روز به روز لاغرتر و نهیفتر میشن و تاب و توانشون برای کار و بار کشیدن کمتر و کمتر میشه کار که به اینجا کشید ساربان به فکر فرو رفت و یه دفعه یادش اومد که ایداد بیداد وقتی چند روز پیش مرزی توی شطرها و علاقها افتاد این دوتا نتونستن جون سالم به در ببرند و مریض منده این بود که تصمیم گرفت هر طور شده این علاق و شطر رو اصف کاروانش جدا کنه چون اونها تنها کاری که میکردن خوردن کاه و یونجه بود و بس و دیگه هیچ فایده ای برای صاحبشون نداشتن ساربان بعد از مدتی فکر کردن و نقشه کشیدن تصمیم گرفت الاغ و شتر رو تو بیابون خدا به حال خودشون رها کنه تا هر جا که خواستن برن و هر جوری که خواستن بخورن و بخوابن و هر خاکی خواستن بر سرشون بریزه همین کار رو هم کرد وقتی کاروان به یه بیابون بی سر و ته رسید اون دوتا رو از صف بقیه جدا کرد و بعد هم به سفر خودش ادامه داد عزیزان شنیدید که چون خرج الاق و شطر کاروان بیشتر از درآمدشون بود ساربان اونها رو تو بیابون خدا ول کرد و رفت از اونجایی که ساربان باید هرچه زودتر بارهای مردم رو به مقصد برسونه دیگه کاری باش نداریم و میریم سراغ شطر و در درمونده و وامونده که تو بیابون برهود حیرون و سرگردون شده بودن القصه شطر که خودش رو بی و و تنهادی رو به دریا زد و تصمیم گرفت بره و بره تا بلکه فرجی بشه و از بدبختی نجات پیدا کنه برای همین نفسی تازه کرد و زد برا اما هنوز چند قدم نرفته بود که صدای اولاغ رو شنید رفیق کجا داری میری؟ شطور آهی کشید و گفت به نا کجا هر جا که بتونم به نون و نوایی برسم و جونم رو از مرگ نجات بده. اولاق گفت پس منو هم با خودت ببر درسته تو شطوری و من اولاقم ولی در هر حال دردمون حالا یکیه و هر دو گرفتار و بیچاره شدیم شطور گفت هر جا رفتم همراه من میایی نمیگی راه دوره و رفتن سخته؟ اولاق گفت این حرفا چیه دوست عزیز؟ هر وضعی پیدا کنیم از حال و روز الانمون که بهتر نمیشه پس هرچه پیش آید خوش آید بریم خلاصه بعد از گذاشتن قول و قرار دو رفیق راه بیابون رو در پیش گرفتن و رفتن و رفتن روزها تشنگی و گشنگی کشیدن بارها خوردن زمین و باهاشون زخم شد شبهای زیادی رو با شکم گرسنه به صبح رسوندن ولی ناامید نشدن و از اونجایی که پای جونشون در میون بود به راه خودشون ادامه داد. بعد از روزها راه رفتن و بیابونهای داغ و سوزان رو پشت سر گذاشتن هر دو خسته و کوفته شدن و اون نیمه جونی رو هم که داشتن داشت از تنشون بیرون میرفت که یه دفعه چشمشون به دره سرسبز و آبادی افتاد شطر اولاغ رو میگین با دیدن دره از تعجب چشماشون گشاد شد و جون تازه ای گرفتن و در حالی که سر از پا نمیشناختن کشون کشون تن بیجونشون رو به دره رسوندن بله دیگه وضع از روز خدا هم روشنتره که دو حیوان از همه جا نامید چه خوشحالی ها و شادی ها و پایکوبی ها که نکرده الغرز تو دره تا چشم کار میکرد سبزی و علف های خوشبو رویده بود طوری که هوش از سر هر آبری میپرم از این بهتر چشمه اونجا وجود داشت با آبی خنک و زلال درست مثل اشک چشم که جگر هر تشنهای با خوردن کمی از اون آب مثل تکه ای از یخ میشود باری اولاغ و شطر تو اون دره مشغول خوردن و گشت و گذار و از اون به بعد کارشون شد خوردن و خوابیدن. دیگه نه از بارکشی و بارهای سنگین خبری بود و نه از ساربان و ضربه های شلاغش هر روز یه جور علف و سبزی میخورد و چند قلوب آب روش و بعدم گوشه ای از دره زیر آفتاب تو خاک و خل غلط میزد و به قول خودش صفا میکرد شطورم فقط فرقش با الاق این بود که بعد از علف خوردن دیگه رو خاکا غلط نمیزد بلکه گوشه ای رو پیدا میکرد و لم میداد و شروع می کرد به نشخار کردن چند ماهی از این وز گذشت تو این مدت رنگ و روی شطر و علاغ باز شد و یواش یواش چاغ شدن و حسابی حالشون سر جا اومد حالا دیگه انگار نه انگار که سالها تو دشت و صحرا بار کشیدن و تشنگی و گشنگی کشیدن مثل این بود که سالهاست تو اون دره سرسبز جا خوش کرد تو یکی از همین روزها شطور رو به اولاخ کرد و گفت جدا جای شکر داره راستی دوست چارپای من تو هیچ فکر میکردی روزی و روزگاری گذرت به این دره سرسبز بیفته و اینقدر راحتی و آسایش به سراغت بیاد اولا گفت نه جونه شما من که تو خوابم نمی دیدم یه روز سر از اینجا در بیارم. واقعا که جای خوب و باصفایی. اولاغ این رو گفت و بنای آواز رو به قول خود خرها و ارعر کردن رو به قول ما آدم ها گذاشت شطور که مدتها بود صدای آواز هیچ حیوانی رو نشنیده بود اولش از ارعر خر خوشش اومد و از نفس گرم اولاغ تعریف ها کرد خر با شنیدن بهبه و چهچه چه ها از خودش بیخود خود شد و باز هم بنای مجلسگرمی رو گذاشت. بلاخر کار به جایی رسید که شطر از جا بلند شد و با هزار خواهش و تمنا از خر خواست که بیش از اون آواز نخونه. خرم با چند بار عدا و اتوار در آوردن آروم گرفت و مشغول غلط زدن تو خاکها شد. ولی دوستان کار آواز خوندن خر به همینجا ختم نشد چون صبح فردای اون روز جناب شطر با سر و صدا و آواز گوشخراش خراش از خواب بیدار شد دید ایداد بیداد اولاغ به آواز خوندن تنها راضی نشده هم با صدای بلند آواز میخونه و هم پا بر زمین میکوبه و به قول خود اولاغا میرخسه و به قول ما آدما جفتک میپرونه شطور که آینده نگر بود و میدونست عرعر کردن و آواز خوندن اولاغ بالاخره کار دستشون میده با اعتراض رو به اون کرد و گفت بس کن آقا اولاغه چه خبرته مگه خوشی زیر دلت زده میخوای کار دستمون بدی اولاغ پرسید آخه چه عیبی داره آب زلال و در ری سرسبز تنها چیزی که این میون کم بود آواز خوش یه اولاغ بود که منم با صدای خوشم این نقیصه رو رفت میکنم دیگه اینکه ناراحت شدن نداره شطور گفت خوش انصاف آخه نونت نیست آبت نیست؟ دیگه آواز خوندن چیه؟ تو فکر نمی کنی یه وقت کاروانی از اینجا رد بشه و ساربانی با شنیدن صدای تو سراغ ما بیاد و دوباره روز از نو و روزی از نو دوباره تو دشت و صحرا مجبور باشیم صد منبار رو برای یه مشکاهوی اونجه بکشیم؟ الاق جفتک پروند و گفت چی داری میگی؟ حالا کو کاروان که این طرفا بیاد؟ از این گذشته من الان نرقصم و آواز نخونم. پس که این کارو بکنم؟ خلاصه دوستان هرچی شطر بیچاره جز زد و التماس کرد حرف حساب به گوش اولاغ فرو نرفت که نرفت. از فردای اون روز اولاغ تو علفها و سبزها گردش میکرد و آواز میخوند. شطرم یه گوشه مینشست و تا وقتی اولاغ مشغول آواز خوندن بود از ترس مثل بید میلرزید و دائم خدا خدا میکرد که مبادا کاروانی از گرد راه برسه و اتفاقی که نباید بیفته بیفته ولی ترس و لرز شطور باعث نمیشد که اولاغ از رقصیدن و آواز خوندن دست برداره تا اینکه گذر کاروانی به اون طرف افتاد ساربان این کاروان همونطور که داشت از کنار در سرسبز میگذشت صدای ارعر خری رو شنید اول گوشاشو خوب تیز کرد که به درست شدیده یا نه وقتی مطمئن شد اون صدا صدای خر بوده به طرف دره رفت که یه دفعه چشمش به اولاغ و شطر چاق و چله افتاد که تو دره داشتن میچریدن و برای خودشون خوش بودن ساربان نگاهی به اطراف اندا از اونجایی که کسی رو اون طرف ها ندید فهمید که الاق و شطر بی صاحب. این بود که فورا رفت تو در و افساری به گردن شطور و الاغ بست و بعد هم اونها رو به چهار پایان خودش اضافه کرد علاغ که باور نمیکرد گیر افتاده باشه تا چند ساعتی گیج و منگ بود و فکر می کرد خواب می بینه هم که از همون اول فهمیده بود اوضاع از چه قراره از روی سوز جگر آه جانسوزی کشید و تصمیم گرفت توی فرصت مناسب انتقامش رو از اولاخ بگیره اولاخ بعد از چند ساعت راه رفتن زیر آفتاب داغ و تشنگی کشیدن یادش به اون در سرسبز و های خوش افتاد و از روی ناراحتی بنای عرعر کردن رو گذاشت صدای اولاخ اونقدر غمنگیز و دل بود که دل بقیه های کاروان رو هم شکست اونها از اینکه که یکی از هم جنساشون دردمنده برای همدردی شروع کردن به ارعر کردن ساربان که از این همه سر و صدا کلافه شده بود شلاقش رو تو دستش محکم کرد و یک کتک مفصل به الاق زد وقتی اولاغ آروم گرفت بقیه هم خود به خود آروم شده اولاغ بیچاره دید اونقدر بدبخ شده که دیگه حق ناله کردنم نداره این بود که تو دلش خودخوری می کرد و راه می رفت و نفسش هم در نمی آمد. چند روزی گذشت. تو این مدت اولاغ هر روز لاغر و لاغرتر و رنگ پریده تر میشد. بالاخره یه روز کار به جایی رسید که اون نتونست قدم از قدم برداری ساربان وقتی دید علاغ نمیتونه بار رو رو پشت خودش تحمل کنه، بار اونو برداشت و روی پشت علاغای دیگه گذاشت. ولی این کار باعث نشد که غم و غصه از دل اولاغ بره اون بیچاره هر لحظه یاد در ریه سرسبز سبز و اندوه و پشیمونی قلبش رو پر می‌کرد. دو دو سفتهی که گذشت دیگه پاهای اولاغ شده بود عین نهی نه قلیون اونقدر لاغر شده بود که میشد شد استخونای رو شمارد از غذا تو یکی از همین روزها کاروان به یه سربالایی رسید اولاغ های دیگه از اون که به این وضع عادت کرده بودن زود خودشونو بالا کشیدن اما این الاق از اون جایی که تاب و توانش رو از دست داده بود نتونست حتی یک قدمم از سربالایی بالا بره و همونجا رو زمین نشست این ساربان که برعکس ساربان قبلی آدم با سبر و حوصله ای بود دلش نیومد یه الاغ رو از دست بده به همین خاطر شطور غنیمتی یعنی همونی رو که رفیق الاق بود به نشوند و به هر مکافاتی که بود الاق رو سوار اون کرد تا بتونه از سربالایی بگذره به محض سوار شدن الاغ شطور پوسخندی زد و گفت دوست عزیز چطوری؟ تعریف کن ببینم حالا و احوالت خوشه؟ اولاغ آهی کشید و گفت چه حالی؟ چه احوالی؟ آن را که عیانه است چه حاجت به بیانه؟ خب بگو ببینم حال خودت چطوره شطور نیشخندی زد و گفت برعکس تو من خیلی هم خوشم باور کن تو عمرم روزی رو یاد ندارم که برام مثل امروز باشه دیگه چیزی نمونده از خوشی بمیرم الاق تعجب کرد و گفت مگه عقل تو از دست دادی؟ اون همه نعمت ازت گرفته شده حالا تو این بر رو بیابون داری جون میکنی اون وقت میگی خوشم؟ شطور خندید و گفت حال همه که یه جور نیست در حال حاضر من اونقدر خوشم که میخوام برقصم. با شنیدن این حرف رنگ از رخ اولاخ پرید گفت چی داری میگی؟ اینجا که جای رقصیدن نیست شطور گفت اتفاقا جای رقصیدن اینجاست چون دیگه ترس گرفتار شدن به دست ساربونم در میون نیست اولاخ که تازه فهمید شطور میخواد چی کار کنه با التماس و زاری گفت دوست عزیز این چه وقتیه که تو برای رخصیدن پیدا کردی؟ شطور با خونسردی گفت آها حالا رسیدیم به اصل موضوع یادتتون در ریه آباد و سرسبز من چقدر جز زدم و التماس کردم که آقا اولاقه صدای خودتو پایین بیار اونقدر آواز نخون اونقدر عدا و اطفار در نیار اونقدر رقص و پایکوبی نکن آخر ما گرفتار میشیم حالا من میگم اگه الان نرقصم پس کی برقصم خلاص عزیزان شطور بعد از این حرف شروع کرد به رقصیدن و رقصید و رقصید تا اینکه که بیچاره از اون بالا معلق شد پایین تو دره و به سزای آواز خوندن و رقصیدنش رسید بله عزیزان از اونجایی که این علاقم نخواست و نتونست از موقعیت به دست اومده استفاده لازم رو ببره و آینده نگر باشه و تا به جای رسید خودش رو فراموش کرد که از کجا اومده و اونجا چه کار داره و یادش رفت که از چه محلکه نجات پیدا کرده و چه کار باید بکنه تا دوباره گرفتار نشه به بلای جانکاهد و شد و برای همیشه به قعر دره نیستی سقوط کرد و از همه مهمتر این ضرب المثل شامل حال و روزه شد که آب شیرین برای خرب خوب